بسم الله الرحمن الرحیم سلام و شب شما عزیزان و بینندگان فرهیخته شبکه چهار بخیر با ویژه برنامه نصر الله این شاء در خدمت شما هستیم از شبکه 4 به صورت زنده از حوالی ساعت نیم یک رو به هم شب با تاخیری آغاز کردیم برنامه رو برنامه تقدیم نگاه های شما می کنیم امشب مفتخرم میزبان جناب دکتر سرشناس از اساتید قدیمی خودم باشم باشام، уважаемые اعضای هیئت علمی دانشگاه سوره، از دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه نصر الله، اراد سلام و شب بخیر. سخن آغازینتون رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و ارادت دارم خدمت شما خدمت بینندگان محترم. تشکر می‌کنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار آقای زرشناس مطلع بحث رو با این پرسش آغاز بکنم که ما در طول تاریخ تمدن بشری یکی از بزنگاه های تغییرات تمدنی جنگها بودن معمولا جنگها عامل تغییرات مهمی در پسا وضعیت خودشون بودن و ملت ها معمولا از جنگها ها درس های بزرگی گرفتن دوست و دشمنشون رو شناختن راه های درست و قلطی رو که اومدن شناختن و معمولا یه تأثیر اندیشه ای هم این جنگ ها در وضعیت خودشون اعمال کردن نعم. که ما الان مثلا همجرد فلبداهه به ذهنم رسید که شاید مثلا دوره یونانی موابیه یکی از مهمترین عوامل فلسفه های واگشتی و فلسفه های کلبی و روابی نعم. و اینا مثلا جنگ های اسکندر و اون وضعیت جنگی جهان بوده که منجر به ایجاد های فلسفی و فکری شده. و خب ما 12 روز جنگ تحمیلی با اسرائیل جنگ شدیدی هم بود بالاخره زرد و خورد شدیدی طرفین کردن اسرائیل که بی سابقه بود ما هم شاید در طول حداقل تاریخ پس از جنگمون از سال 678 اینجوری شاید تجربه مستقیم رو در شهرامون نداشتیم و خلاص جنگ بود یعنی به یک معنا کاملا ما طعم جنگ رو چشیدیم سوال اصلی که ان در این یک سفر خدمت شما باشم و استفاده بکنیم که ما چه عبرت ها و درس هایی گرفتیم به خصوص که بالاخره در طول چند روز گذشته جریان های مختلف فکری دارن روایت میکنن این جنگ که آقا ما کجاها اشتباه رفتیم کجاها درست بود عامل جنگ چی بود چجوری میشد ازش پیشگیری کرد از این به بعد باید چه کار بکنیم روایت شما رو بشنبیم ما از این درس چیزهایی باید بیاموزیم و چه چیزهایی رو نباید بیان کنیم؟ آخ دکتر من شما که فرمودید در مورد تاثیر جنگ ها واقعا مثلا شما نگاه کنید جنگ جهانی اول امه. وقتی که رخ میده چند تا امپراتوری فرو میپوشه امپراتوری عثمانی آسمانی. امپراتوری تزاری، امپراتوری قیصر ویلهم تو آلمان امپراتوری پاوتر به پا شنگری بعد از چقدر ساختارها عوض میشن ساختار اقتصادی اجتماعی اصلا سبک زندگی چون سبک زندگی که مثلا شما تو گتسبی بزرگ رمان گتسبی بزرگ می‌بینید اسکات فسترال بیانگر رواهتگرش تو آمریکا است تو بعد از 1918 تو اروپا همه تاثیرات جنگه ام. خیلی اتفاقا بعد از جنگ های دوم همه. اصلا این چیزی که آرایش که امروز به نام خاورمیانه ما می‌شناسیم غرب آسیایی اصلا محصول جنگ جهانی اول و خیلی اما نکته چیه نکته ایناست که ببینید یک جریانی در درون کشور که خب حالا الان بخشش با تعداد استادان دانشگاهی که تحت بیانیه دادن 180 نفر و اینا بخشی از اونا هستند یا شاید بگیم دارن اونها رو نمایندگی میکنن یه جریانی برای نظام دانشگاهی کشور و در نظام سیاسی کشور و احتمالا در میان بدن اجتماعی ما در میان لایه های طبقات جامعه ما منطقی اینها ها خب برای اون بدن اجتماعی دارن گفتار میسازن دارن در واقع روی کرد و ایدولوژیک تحریف میکنن اینا که عبرت هایی از این جنگ آموختند و خواهان این است تجدید نظر ها تو این بیانیه اگر شما نگاه کنید اینها چند تا عامل مهم رو مطرح کردن من اجازه میخوام فا... چیز کنم فهرستوار بگم بعد تمرکز کنیم ببینیم اینا چه دارن میگن ازش میتونیم خیلی چیز یاد بگیریم یعنی واقعا میشه خیلی چیزه. ببینید اینا مدعی تغییر من مدعی تغییر بنیادین رویکرد نظام اوکراینیا این ادعاییکه ما از عبارات از خودشون از تون بیانیشون دهن مدعین که مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا مدعین که نگاه های افراطی که محرک دشمنی ها بوده بعد گذاشته بشه عامل جنگ در واقع اصلا دقیقاً عامل جنگ با. ابداً سراغ ما و بعد همچنین مدعی هستن که در واقع ما با یک گسترش به اصطلاح رو لوبروین فا گسترش در بنیادین افار که بعد اینا همه به همدیگه دیگه ربط دادن گفتن مبدوی یه پارادایمیه و این با دوجشه بیایم اینا رو تحلیل کنیم ببینیم واقعا چه پارادایمی از سال 1968 بر کشور ما حاکم بوده نمایندگان این پارادایم کی بودند و آیا و ببینیم اون چیزایی که اینا دارن میگن که سرمایه اجتماعی از این رفتار فلان شده ارتباطش با این پارادایم چیه ببینید دوستانی که این بیانیه امضا بخششون اینا از مسئولان و برنامه ریزان و تصمیم سازان و تصمیم گیران و نظریه پردازان یک مدل فکری بودند و اتفاقا پاراداییمی که بر قوه مجری این کشور بیش از سه دهه حاکم بوده از سال 68 بعد جز در مخته کوتاهی حتی در دوران احمدی نجات هم عملا پارادایم این آدم ها حاکم بود حتی احمدی نژاد پارادایی موض نکرد تیم آدم ها رو بس کردن کلان نظریه توسعه همش اون بود اینا اینا برنامه توسعه ما رو اینا نوشتن تمام این چند برنامه توسعه ای که ما داریم اینها هر سال تخصیص بودجه دادن سازمان برنامه بودجه دست اینا بوده سیاست گذارهای میانی و تهادودی ات ارشد و کلان در بسیاری از دورها دولت ها اینا بودن در دولت های هاشمی رفسانجانی در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای روحانی حتی جریان تصمیم ساز تو بدنه مدیریتی در واقع فعال اجرایی کشور تو بدنه میانی در دوره احمدی نژاد، دوره دوم خیلی فعالتر دوره اول حتی باز اینا بودن پارادایم نظام دانشگاهی ما در مورد مواجهه با غرب مو... مسئله استقلال در واقع تو سیار همه زیر سایه تئوریای ایناست تئوریای اقتصادی اجتماعی که من حالا توضیح میدم موجب همین فقر گسترده ای شده که آقا اینا دارن الان بهش اعتراض میکنن زیر سر خودشونه الان ما باید میدونید این دوستانی که من به شخص الان لزومی کاری ندارم ولی خیلی‌هاش خیلی از این بودن یعنی فکر کنید بله بله بله ببینید به هر حال ما نمیتونیم پنهان کنیم که آقا این ادمی سالهای سال داره تئوری نولیبرال رو در حوزه اقتصاد و اجتماع دست میده و نئونبرالیزم کشور رو به خاکستر نشونده از نظر اقتصادی حالا به جای اینکه این آقا پاسخ باشه مدعی شده به جای اینکه بیاد دفاعی بده که خاص در میکنه. ببینیم بله ما من هم کاملا معتقدم پردامون با دوید. چون پاراداایی که از 68 حاکم شد در ما ببینید پارادام نظامی و پراردامی انقلابی ما فقط تو بخش نظامی بود. این پارادام اصلا نتونستی یا تو اقتصاد. پارادایم تفکر انقلابی اصلا نتونست بیاد تو اقتصاد نتونست بیاد تو فرهنگ توی سیاست خارجی هم همیشه یک کشاکشی ما داشتیم بین تیف پارادایم نون لیبرال ها و پارادایم انقلابی اصلا هم اینطوری نبود که بگیم لو همه جا همیشه تمام ایار پارادایم انقلابی آکم بود اما تو از اقتصادی آقایون میگن شما ها میگن این سیاست ها سرمایه اجتماعی رزمین بوده کاملا درست سرمایه اجتماعی بسیار آسیب زده بش ابتا این جنگ نجاتمون داد تا حدی الان میگم مم. میگن فقر ایجاد کرده، بله، کی آملشه؟ یعنی چرا این فقر ایجاد شد؟ بریم بررسی کن سیاست های اقتصادی نولیبرال، سیاست های اقتصادی نولیبرال کی ریخته؟ تیوریسیاناش کی آقای طبیبیانه، آقای نیلیه، همین دوستان عزیزن، همین آن، مم. همین اقتصاددانه که اینا اومده، کیه؟ کی طرف داره نورزم اقتصادیه؟ چرا و از اقتصادی ما اینطوریه؟ چرا توضیح ثروت ما حتی از دوره جنگ تحمیلی بدتره؟ چون تو اقتصادی آقایونه؟ اصلا شما میدید نیولیبرالیزم حرفش اینه که دولت در قبال جامعه هیچ مسئولیتی نداره دو به دولت چه ربطی داره که برای جامعه کار درست کنه؟ به دولت چه ربطی داره که بیمارستان و بهداشت و آموزش برای مردم درست کنه؟ خب آقایون اینا این سیاستای شما این بود... آسيبا رو زده این شانس من حالا اینا... بحث من... آروم بکنم اینو من بگم من میخوام بگم که هر کاش این... این من خیلی دوست داشتم بحث این دو طرفه تر بود خب من ماشاءالله میدونم الان دوستام برم... تلفن داره من با کاری با شخص ندارم به مسئولندگی از دوستان بکنم که من با خیلی از بالاخره در طول برنامهای که 4 واقعا میگم ما چه تئوری نداریم ما. میگن میگم یانه اول رئیس نما، من الان به شما توضیح میدم. به شما, شما میگم عالی فرسیدید. آره، طرفدارش اینطور نیست. عالی فرسیدید بذا بهت بگم. اول بذا نتایج نشست نولوار بگم بعد اثبات کنم چرا داریم. دست شما درد نکنه. این بذا جنببندی کنم. بسیاری از این امضاکنندگان این بیانیه م. که دارن در مورد فقر حرف میزنند، در مورد تغییر پارادایم حرف میزنن. پارادایم خودشون آکن بود، الان توضیح میدم چرا. فقر هم پارادایم اینها ایجاد کرده، الان توضیح میدم چرا. ببینید چرا میگم سسته نو لیبرالی؟ میدونید نو لیبرالیز ویژگیش میگه آقا من اصلا کاری به کار جامعه ندارم عدالت یه وهمه من مسئولیتی در قبال جامعه ندارم همون وزیری که با افتخار میگه من یه خونه نساختم این دقیقا سیاست نو برخلاف قانون اساسی که دولت رو موظف کرده آموزش رایگان، بهداشت رایگان برای مسکن، برای همه تهمی کنه اینا مدعین درامه دولت هیچ وظیفه‌ای ای داری قبیل در این, در این موضوع, موضوع نداره ببینید آقایون با این سیاست ها معلوم سرمایه اجتماعی آسیب زدن بهش فقر و گسترش دادن زیر سر خودشونه شما میگید نولیبرال نیستن، من الان اثبات میکنم برای شما از سال 68 شما برید مقدمه مربانی حتی این اشکال اینجا بکنم اشکال بکنم که الان دوستان خیلیاشو میگن اقا این روایتی که شما از نئو لیبرالیست داریم. اصلا این نیست نیو نه نیو شما بگید شما این نیست من اشاره به هایک میکنم اینو خب، بزنید یعنی برادر من به که برای برد. دولت نقش مهمی در اقتصاد قائلا داشت بزنید من, من نه رو میگم چی نقشش فقط اهمیت شما اگر یه اجازه ای بدید تموم بسیار میخوام اشکال کنم که ببینید ببینید نه شما باید از دوستان اشکار کنید مثالی نداره ببینید بردر عزیز دو نولیبرال نولیبرالا چیه خود هایک اینو رسما داره میگه که عدالت وهمه اینا حالا بگذاریم ببینید دوست عزیز اینا سیاستشون چیه ببینید تو امریکا که اومدن ریگان تاچر اینا چیکار کردن تاچر های کارگری رو به شدت تضعیف کرد چرا بهش میگن بانو یوهانین سرکوب وحشتناک کرد اونا رو ریگان چیکار کرد اینا تیزشون تزر، چی بود؟ اصلا برای چی نونی برای از اومد؟ ببینید، وقتی که سیاست وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شد، دولت‌های سرمایداری، حتی از بعد از جنگ جهانی اول، احساس خطر کردن، چون دیدن یک ششم کره زمین مدعی این بود که از مدار سرمایداری خارج میشه، اینی روسا. توی 1922 مسلینی و فاشیست اومدن سر کار، 1933، آلمان، اینا همه خلاف لیبرالیز بودن دیگه خلاف مدرنیت نبودن اما خلاف لیبرالیز بودن بعد لیبرال ها احساس نگرانی کردند که اگر بعد شورش برنج تو ژاپن روخ داد اشغال تمام کارخونه ها توسط کارگر ها از تو و ایتالیا روخ داد اینا ترسیدن که اگر ما در واقع یه فکری برای مردم نکنیم این انقلاب گرستنگان نابود خواهد کرد سیستم سرموداری چیزی رو که معلوم شریعتی تحت اومده به سر عقلمدن سرمادری مطرح کنه اصلا دولت‌های رفاه اینجا زایده میشه اینا کین، کین میگن آره اینا میگن آقا ما میایم یه, مص... یه چیزی می‌گیریم یه به مالیاتی از جامعه می‌گیریم از سرمایه‌دارا می‌گیریم در یه درصدی یعنی سودشون رو یه ذره میاریم پایین بعد به جاش برای مردم فقیر کودکستان دبستان معده کودک رایگان اشتماعید. نمیدونم ب... ب... ب... بیمارستان رایگان اینا درست میگن که ناز نمیرن یه بیمه بیکاری بهشون میدیم یه دونه نمیگه که له نشن دیگه چون مدل لیبرالیسم کلاسیک له کرده بود شما برید کتاب راینهارد رو ببینید ببینید کتاب لیبرالیزم لیبرالیسم آنی آنتونی رو ببینید اصلا برید تجربی تاریخی لیبرالیسم رو تو همین رمانه چازدیکز ببینید توی ژرمینال امیل زولا ببینید توی تیر وقتان جکلندن ببینید این تجربه تاریخی واضحه بوده که لیبرالیسم بیچاره کرده رو. اینا برای اینکه سقوط نکنه نازو سوزی. اومدن مدل دولت های رفاه رو آوردن صد همین اجرا شد <تصفيق> یعنی از 145 تا 175 بعضی رونقار رو میجا کرد و بعضی کارا 173 به بعد چی شد؟ اتفاق بزرگی رخ داد بعد از اون بحران نفتی و مسئله ای که حالا بعد در واقع سیاست های اقتصادی بیتون وودز رو اینا تغییر دادن و مابضایی دلار و طلا رو بردن به دلار و نفت و غیره یک افتی در سود سوده سرمایه‌داری ایجاد شد چون اینها از انقلاب بلفل کارگر و دهقانان مسرفان احساس خطر دیگه نمیکردن ده هزار رفت و چون شوربی اون برای زمینگیر شده بود دیگه آلترناتیوی نبود که مثلا 1937 تحصنا... نه 1977 نه من گفتم 1977 آره ده 1970 آره. داره چون اینا چیز بود آلترناتیو رو در واقع این احساس خطر نمیکردن چیکار کردن چی رفتن به سمت سیاستای جدید این سیاست جدید چی بود میگفت آقا دیگه مالیات از سرمایه‌دارا نمی‌گیریم دیگه چون دولت از طریق مالیات از سرمایه‌دارا بود که این خدماتو به جامعه میداد خدمات بی خدمات پس دولت مسئولیتی نداره استخدام کردن آدما رو دولت مسئولیتی نداره بهداشت رایگان درست کنه دولت مسئولیتی در آموزش رایگان نداره دولت مسئولیتی در مسکن نداره حالا ببینیم مسائل 68 تو ایران ناگهین چیکار کردند؟ همین تیم همین تیم اینا رو اینن. تحت عنوان مال لاز. نه نه از اول ما تمام کنم بچه تحت عنوان تعدیل ساختاری همین کار کرد. تمام ها رو تعدیل کرد. اینکه الان ما کارگر داریم که قرارداد سفید امضا داره همون پولشو طرف نمیده. مدل خصوصی سازی. خصوصی سازی که آقایون بعدازاده فلان وزیره نمیدونم پسرخاله اون یکیه بعد حتی دوزار پول از جیم خودش نمیذاره. غالبا از بانک مرکزی با هم میگیره از اون غسل غز، پس ندایی اساسی. که اینا دارن که میدونید دیگه یه حال هم دارن دیگه از اون وام میگیره بعد اون وام با زیر قیمت کارخونه میگرفت بعد به نام خصوصی سازی به نام خودش میکرد مدل خصوصی سازی که تو ذهن تو تفکر انقلابی به برنامه ایمان بود این نبود مدل خصوصی سازی این بود که آقا توده ها سرمایه کوچیک سرمایه متوسط وارد اقتصاد بشه که سرمایه بزرگ که سرمایه بزرگ نتونه تکتازی کنه اینا کاملا به عکس عمل کردن برداره من برداره ببین حالا من بگم اناسر, اناسر نولیبرالی سیاسته این آقایون رو بگم یک این مسئله است سیاست تعدیل ساختاری دو نوع خستازی که آقایون اجرا کردن که حاصلش این شد که وزیر دولت آقای روانی هیچده تا شرکت کامل یه, یه،, یه شهر یه صنعت کاملا تلقوم آقاستی نم اون یکی مونوپلی واردات فلان چیزه این اصلا این سیاستاست دیگه بعد سیاست بعدیشون مسئولیت زدایی از دولت در قبال آموزش مسئولیت زدایی از دولت در قبال بهداشت مسئولیت زدایی از دولت در قبال ساخت مسکن برای جامعه تا این سه تا سه تا این سیاستی که اینا اجرا کردن کاملا سیستم لیبرالی کامل یعنی نه اصلا شما ببینید لیبرالیسم ببینید هر جا اجرا شده تو مصر مبارک اجرایی شد اون بحران‌ها را ایجاد کرد تو اردن اجرایی شد تو مکزیک اجرایی شد تو آرژانتین کارلوس منم اجرایی شد آرژانتینی که سنتی تن اقتصاد ده هزار 80 بود این سیاست‌ها ده 90 آرژانتین رو خاکستر نشوند مکزیک رو به دومین کشور بدهگار آمریکای لاتین بدل کرد این سیاست‌ها بلااست ما رو هم بدهکار کرد ما شانس آوردیم عبور کردیم به البته تدبیر جریان انقلابی و جریان از حزتاقا بود که ما تونسیم عبور کنیم ببینید برادر من این سیاست های نولی رو اینا رسما تحت عنوان سازندگی و آوردن توی این مرکز یکتر مگه غیر از اینه که اومدن آموزش رایگان رو از من بردن اگر دست این آقایون بود حالا من نمیخوام اسم ببرم دولت دولتمردی توی این ممنکت بود توی شورای عالی امنیت ملی که معتقد بود تمام بیمارستان ها تمام مرکز آموزشی به قول ایشون باید خودگردان بشه خودگردان شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا پول پولش رو پولش رو جامعه دیگه نود به طرفت خودش پول بده پول نداره بچهش نمیره مدرسه پول نداره بهداشت نخواهد داشت اینا نولیبرالیزمه، این آقایونی که این بیانیه رو دادن حداقل چهره‌های سرشناسشون مدافعان این سیاستن خود اینها فقر و گسترش دادن خود اینا توضیح نادلانه ثروت ایجاد کردن اون توزیع نادلانه ثروت به سرمایه اجتماعی لطمه زد بله لطمه خود ولی با مدل اینها من هم معتقدم پارادایم ما باید عوض شه یعنی از پارادایم نیولیبرالیسم اقتصادی و پارادایم نیولیبرالیسم فرهنگی باید عبور کنیم وگرنه بیچاره خواهیم شد امروز نشون دادن تفکر انقلابی است که ما رو حفظ کرد تفکر انقلابی که تو بخش نظامی ما بود گرایی که اونجا بود استقلال ما را نگه داشت ما رو تضمین کرد امنیت ما با مذاکره ای که اصلا برای دشمن دو ریال ارزش نداره وسط مذاکره ما رو میزنه میگه اون حداقل اقل ترامبر میگه من تا دو روز دیگه فرام فکر میکنم شبش حمله میکنه با این آدم ها میخواید مذاکره کنید با آدم هایی که از تو چیزی جز تسلیم نمیخواد؟ اصلا آدم ها تو رو به موجودیت قبول ندارن اصلا به رسمیت نمیشناسن شما تا کی که ها. بدمید درباره تسلیم در مقابل دشمنی که اومده خونتو بگیره، نابودت کنه، تضییعیت کنه، ویرانت کنه بس کنید. تا کی می‌خوادین وزرادا بدید؟ چقدر که فریب بدید افکار عمومی رو؟ بابا یه لحظه تحمل کنید آخه پارادایم باید عوض شه، بله پادوم اقتصادی ما قطعا باید عوض شه. به خاطری که پادایم شماها که بوده و وزر اینطوری کرده. ما باید به سمت نوعی پارادایم عدالت محور در حوزه ای اقتصاد بریم. قطعاً باید بریم. پارادایم نولیبرالی همین دوستان، همین جماعت، پارادایم عزیزان مکتب نیاوران، اینا باید جمع بشه. و خدا کنه بشه. من نگرانم. این یه نکته است شاید دکتر. نکته بعدی. بذارید من اشغالم. بفهم در چشمه یه نکته دیگه میگم خدمت. این دوستان مانتون. عزیز به جای که در موزه کیفر فرخا صادر کردن یا مطالبه کردند گر مطالبه کردند آذر بشن بیان اول کار امپرات رو جواب بدن بیچ از صدعشون این عزیزان بعضی خیلی از استادان دائمی دانشگاه مروجان سرسختی نئولیبرالیسم هستند هیئت علمی استاد تمام هستند دانش‌یارند بعضیشون مسئول اجرایی امپرات بودن وزیر بودن بعد چه وزرایی بیان در این این همه رانتخاری این همه ویژخاری این همه حقوق نور بگیری در مقابل در مقابل حقوقهای نجومی پاسخگو باشن در مقابل این وضعیت اقتصادی که در حوزه عدالت حقوقی اجرا کردن پاسخگو باشن جریان انقلابی بخش نظامی دستش بود و دیدید چه کرد شاهکار آفرید دیدید در مقابل این همه سازشی که آقایون کردن یک تنه ایستاد کل ناتو رو به زمین زد آقای دکتر ما فقط با اسرائیل طرف نبودیم ما با ناتو طرف بودیم یعنی و بعد دیدید چیکار کرد عبور موشک های ما از دفاعی چند لایه از دفاعی که از اردن و مصر و عربستان و عربستان ها رو ببخشید دوز میخوام اشتباه گفتم آمریکا و انگلیس و ایستاده بودن ما رو تو هوا بزنن یه دفاع سلایه اونور بود تفکر انقلابی ترجمه شد به زبان نظامی دیدید چیکار کرد و اگر این تفکر انقلابی با رادیکالیزمی که این آقایون گرایی می نامیدنش، این آقایون میگفتن این خشونت. مگه سرد این آقایون نبود میگفتش که دوران موشک گذشته روزگار گفتمانه. اگر ما به حرف اون آدم گوش ده بودیم امروز کجا بودیم؟ امروز در مقابل دشمن متجاوزی که اومده خونتو بگیره به اثارت ببرت بدبختت کنه به ذلت بکشت باید از گفتمان حرف میزدیم. این این نشون اون فریب ندید مردم رو. به انقدر دروغ نگید انقدر فظضا رو و بارالود نکنید. بابا یه بار دیگه یه بار دو تجربه تاریخی نشونتون داد بیاد عبرت بیاموزید بزرگترین عبرت از این رویداد به نظر من اینه ام. که یاد بگیریم پارادایم نو لیبرالی رو باید بذاریم کنار وارد پارادایم انقلابی رو وارد حوزه اقتصاد و حوزه فرهنگ بکنیم اما در مورد سیاست خارجی دوستان عزیز لط کردن میگن که تو همین بیانیه میگن که نگاه‌های افراتی که محرک دشمنی است نگاه افراطی مگر ایران نرفت برجام امضا نکرد کی پارش کرد مگر ایران در راکتور در را... اتمیش رو بتن نریخ گل نگرفت کی به همش زد مگر, مگر ایران قبل از اینکه اصلا زمان برسه همه وظایفشو انجام نداد اون آقایون یه دونه رو انجام دادن آخه از شیداری تلف میزنید نگاه افراطی رو این ور داره یا اون ور داره دوستان عزیز آخه واقعبین باشید دیگه یا بعد ببینید مگر ایران نرف مذاکره نکرد وسط مذاکره زدنش غافلگیری زدنش اومده بودن که همه چی رو نابود این همه نمی نمیبینید این همه خباثت رو نمیبینید بعد باز جریان،, جریان داخلی رو مقصر می‌کنید نگاه افلاطونی کدوم نگاه افلاطونی الان که کاملا مشخصه این نگاه درست بوده الان دیگه واضحه اثر از شمسی که نگاهی که میگفت قابل اعتماد نیست نظام جهانی قابل اعتماد نیست اینها قصد مذاکره ندارند مسئله اینا فقط اتمی نیست اینها با موجودیت ما با هویت ما با اقتدار ما با استقلال ما با تمامیت ارضی ما رو برون آقا این دیگه الان اثبات شده دوستان دانشگاهی گرامی بس کنید تا کی تا کجا چرا چرا فضا رو قبار آلود میکنید حالا چرا از این تجربه تاریخی که مردم ما با حس با گوششون با پوستشون فهمیدن کی داره درست میگه فهمیدن کی غیر قابل اعتماده اون اسرائیل گلوبولولی که دوستان نشون میدادن اون آمریکای حقوق بشری دیدن چطوری داره میزنه چطوری ساختمون میزنه آدم میکشه زن باردار میکشه بچه له میکنه اینا با چشمشون دیدند باز شما میخواد ناراحت بدید دوستان دست بردارید یعنی واقعا میگم یه ذره یه ذره ما احساس کنیم خب از این تجربه درسی بگیرید عینن همون رو تکرار همون حرفو اینا عوض کنیم نمیدونم نگاه های افرادی رو بذاریم کنار آقا این حرفا نیست بله نگاه باید بره عوض این نگاه میگن مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا اروپا مگه ایران نرفت آخه ببین دوستان عزیز شما به من بگید یه دشمنی میاد تو خونه شما به شما حمله میکنه وسایلتونو از می عزیزانتون رو میزنه خدا نکرده آسیب بهشون میزنه. میاد اصلا میخواد بگیرتتون بعد شما وای میسید رو با زور بیرونش میکنید. با قاطعیت با حضور همین ملت با توانمندی نیروهای مسلح ما که با رادیکالیزم انقلابی رو به اوج رسوندن. پس میگیرید خودتون رو. بعد دوباره یکی بهتون میگه خب برو مذاکره کن تو مذاکره طرف نایمده بد میگه بعد تسلیم شیا. آخه این مذاکره است. آخه دکتر عزیز شما باشید. واقعا این مذاکره است اسم این مذاکره است مزا... پیشا پیش پیشاپیش چی داره میگه طرف من مخالف مذاکره نیستم به عنوان یک تاکتیک بریم عالی مگه نرفتیم آخه به کی داری میگی لوتو بردا به اون بگو بابا این ایران که رفت ایران که رایت همه چی رو کرد ایران که صادقانه رفت مذاکره کرد آخه دوستان چرا اینقدر دسته غلط میدید من واقعا تعجبو دارم و دردناک برام اینا طیفشون اصدادهای دانشگان و اینو بگم متاسفانه، متاسفانه این جریان در نظام دانشگاهی ما حضور داره و با کمال تأسف باید بهتون بگم آقای دکتر قدرتم داره شما <تصفيق> من نمیدونم ترجمه شو داشتید یا من بارها این ترجمه داشتم دانشجوهایی که میخواستن یه ذره خلاف این مشهورات حرف بزنن خلاف این حرف های ای آقایون حرف بزنن بالاترین و سختترین رویه های استبدادی تحت عنوان علم آقایون اجرا کردن علیه یه دانشجوی که میخواست یه ذره حرف متفاوت بسازه. حرف متفاوته از نوع اینا از نوع انقلابی ها آقا میگفت مثلا تو داری ببین اصلا شما خارج از چارچوب تفکر ترجمه قربی ها نمیتونی تو این ساختار نفس بکشی بازگشت به خیش برای نظام دانشگاه ما برای اکثریتش بیمنی هستن اصلا نمیپذیرن آقای دکتر نمیپذیرن شما اگر چه از به چهره چهرهای انقلابی استناد کنید میگن علمی نیست تا آقا اینه همون چیزی که فاوره بند میگفت من شما کتاب استبداد علم پال فاوره بند رو دیدید میگه دو تا کتاب مهم ام. داره یکی علیه روبشه یکی استبداد آقا واقعا استبداده یعنی به نام علم به نام کارشناسی بالاترین ها این ایناguin داره اعمال میکنه از اون وقت به بقیه میگن آزادی بیان شما هم اجازه بدید بقیه نفس بکشن دوستان عزیز ازتون خواهش میکنم اجازه بدید سیاست های اقتصادی نئولیبرالی تو های اقتصادی که صفر تا صدش دست اجازه بدید نقد بشه اجازه بدید یه نفر نفس بکشه از اقتصاد عدالت محور پیش شما حرف بزنه نندازینش لهش نکنید پروپوزالاشو پاره نکنید بذاید این کارو میکنید شما به شعار آزادی بیان پابندیذ عزیزان اینا دارم رو ناراحت می‌کنه آقای دکتر عزیز. اگر شما نکته‌ای دارید بگید من ادامه بدم. نه بگیدای دکتر چون من می‌ترسم بحث نشه چون وقتمون کمه. چش آره ببینید من یه چند تا عبرت دیگه هم از این مسئله بگیریم. ببینید آقای دکتر ظهور ایران یعنی ببینید این اتفاقی که افتاد. ببینید میدونید که دیگه الان همه میدونن که اینا آمده بودند برای اینکه ما رو نابود کنند. اصلا نایماده بودند. مسئله هست این حرفا نبود. خودشون دارن شما نوع صحبت کردن ترامپ رو از بعد از روز اول که فکر کرده پیروزه و بعد روز دوم و سوم شما نوع صحبت کردن رو ببینید نوع چیز زدن رفتن رو رژیم چنج خب اینا موفق نشدن اینا فکر میکردن مثلا حملات برقاسا سه چهار روزه خب نتونستن اینا دو سه چیز باعث شد مردم ما یک همبستگی عظیمی نشون دادن و بر سر ایران ایستادند بر سر استقلال ایستادند و پشت نظام و پشت نیروهای مسلح قرار گرفتن این یک دوم نیرهای مسلح ما معجزه کردند ما آقا اسرائیل تو عمرش هم چنین شکستی نخورده بود اینجوری ضربه نخورده بود اسرائیل اینطوری شهرش دروداگون نشده بود نیروهای مسلح... واقعا شاهکار کردن من صادقانه بگم خود من فکر کردم. ما چنین ظرفت موشکلی داشته باشیم اون موقعی که خدا رحمت کنه سردار راجیزاده اینو گفت من الان به شما بگم ارزش سردار راجیزاده سردار سلامی تو ذهن من هزار برابر شده. کار بزرگی که اینا کردن این چیزایی که ما میشنیدیم دولت بهشون پول نمیداد همین دولتای دولت های براد. تو فشارشون میذاشتن نمیذاشتن این رو رووردن دانشمنده رو بیارن. هزار تا بمبول جدا از خط جاسوسی و خط نفوذ و هزار مسئله که ما داشتیم و به این بیچار آسیب میزد تو این شرایط تو این انزوا تو این فشار افکار رومی این همه بههدان این همه توهیم اینها ایستدادند. و ما رو نجات دادن ما واقعا مدیون این هستیم واقعا مدیونیم خب ضربه‌ای که نیروهای مسلح زدن و باعث شدن که در واقع اصلا نذاشتن ماجر اون شکی اینا میخوان بره جلو طوری اسرائیل دو مشکل شد یک بحران اقتصادی دو مسئله فرار فرار ساکنان کوچیکه کم جمعیته سوم مسئله مواجه شد با کاهش ظرفیت اصلا موشک‌های ضد هوایی و غیره باعث شد دست به دامن آمریکا بشه خب آمریکا می‌خواستش شکل ظاهراً چیز مقتدرانه‌ای بده یه حمله ای که قد آنچنان نتیجه هم مثلا نداشت به آسیه جدی هم به سیستم ما نزد و اومد طرف آتش بس ما, ما هم پذیرفت یا حداقل توقف حالا این چه نتایجی از نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی و غیره داره چه تو جامعه ما چه تو منطقه چه در مقیاس جهانی ببینید ایرانی که اولا میدید که چقدر ما محبوب دل مردمان منطقه شد خودتون دیدید دیگه دید. من تصاویر رو میدیدم های ایران که از آسمان اردن می‌گزشت بچه‌های دبستانی ایران ایران می‌کردند یعنی بغض ملت ملت‌های عرب و مسلمان منطقه اون‌هایی که همش عادت کرده بودن اسرائیل بزنه ترک تازی کنه یک که تازی کنه و همه ساکت باشن تمامشون دیدن بابا یک وایساده و داره محکم‌تر از اون می‌زنه و طرفو وادار به تسلیم کرده کدوم جنگ کجا تو این حیات 70 ساله‌ی رژیم اشغالگر شما یک نمونه بگید که اسرائیل اینطوری درمونه شده باشه که بخواد دست به دامن بشه بلتا. نداریم نداریم این کاری بود که ایران تنها ایران مستقل ایرانی که کلی بهش حمله کرده بودن بدنامش کرده بودن این ایران انجام داد و اینجا بازم بعد دست مردم رو تشکر کرد با توزیع نادالان ثروت ساختند حقوق نجومی رو دیدند رانتخاری رو دیدند سیاست اقتصادی نولیبرال آقایون اینا رو زیر خط فقر یا خط فقر قرار داد ولی پشت استقلال و ایران ایستادند. پو یعنی پشت هویت ملی ایستادند. پشت ایمان دینی ایستادند. چون میدونستن اینا مهمتر از همه این چیزاست. میدونستن اینا قابل باسازیه. خب حالا این ایرانی که از اینجا در میاد این ایران ظرفیت این ایران محبوب قلوبه. میبینید من بلونه بلونه مقایسه اش می گاهی وقتا بلا تشبیه ولی خب حالا مقایسه دیگه میگن در اصل مناقشه نیست. بعد از جنگ دوم سال میدویت شوروی اروپا تسلیم هیتلر شده بود. انگلستان زیر بمباران بود. روس‌ها ایستادند. اجازه چه ورقه جنگ واقای دکتر توی استالینگراد برگردوندن. ورقه نه با... بعد ارتششون آلمان و عقب روند اومد همینطوری اومده و بعدم اولین کسی که بالای جنازه هیتلر رو هواببران رسید اینا بودن دیگه. ببین شوروی محبوب قلوب شده بود. بی‌دلیل نبود ژامپل سارتو اندرجیدو آتور کویستر رو اینجوری ستایش کرد. اینا بعد هم اون زمان میدید چی بود حتی تمام این ایران ما همه ایران ما واسه نریسانده مجلس صادق هدایت که اصلا تمولات چقد نداره این نتاشون میدید 1325 اولین کنگره نریسانده رو گذاشتن توی خانه فرهنگی شوروی با با کی با محوریت ملک و شاعرای بهار ملک و شاعرای بهار چی بعد میگه می میگه حتی سلطان محمود غزنوی هم نمیتونست. این همه شاعر رو اینا دور هم جمع کنه چرا شوروی چرا اینا اثر جنگ بود بعدا شوروی گنزاد زد این چیزا با اون دادگاه ها با اون افتزه و اینا ولی بگیر میخوام ما الان محول قلوبیم ما الان مستضفان جهان یعنی تو آمریکای جنوبی تو ونزوئلا و کوبا و نیکارگای بگیر تا مردم مسلمان منطقه به ما افتخار میکنن ال... واقعا دارم میگه داریم واقعا این شده دوم دولت ها دولت هایی که فکر میکردن ما ضعیف شدیم ما ابزارهای مقامتمون رو از دست دادیم ما در حال فرو ریختنیم حالا میفهمن چه نیروی توانمندی اینجا وجود داره یه تنه وایساده بعد اجده ها رو عقب مونده برای اولین بار در تاریخ خب این اینا به ما قدرت میده خب ما این نشون میده که ما داریم ظهور می کنیم در مقام یک قدرت منطقه‌ای و حتی فراتر از اون میتونیم تونیم ظهور کنیم در مقام قدرت جهانی البته اینا دلیل داره مسئله باید بگم نکته سوم من فکر می کنم از این پس اهمیت روسیه و چین اهمیت بیشتری برای مقایل میشه و بیشتر میفهمن واجه ببینید اگر ایران مستقل توانمند امروز نباشه تمام جنوب روسیه نامنه تمام اون طرح کلان کریدورهای پیمان بریکس اینا رو هواست اون جاده ای اینا به معنی وابستگی ما نیست ما همسویی داریم نشون داریم که وابسته نیستیم ما تو جنگ از هیچکی کمک نگرفتیم دست نیاز به هیچکی دراز نکردیم روسیه نیازمنده باشور تو جنگ با برا. ما نشدیم. ما با ظرفیت خودمون زدیم. و محکم به عالی بود پوتین گفت این از من کمکی نخواستند از هیچ کس کمک نه با ایستادیم محکمم زدیم و واقعا میگم دست این شهیدان بزرگ ما درد نکنه چه میراثی بر ما گذاشتن که استقلال ما رو حفظ کرد واقعا رو درد نکنه خب ببین کریدور تجاری چیز به اون پیمال بریکس اون با شاه اون به اصطلاح جاده ابریشم همینو برباده اینا, نا... اینا مجبور هستند. و تون دیدن یه ایران توان نه ایران وابسته ایران مستقل توانمند میتونه هم ارز اینا باشه و همسو با اینا. خب اینجا یه افق گشای عجیب غریب بر ما میتونه رخ بده. تو بازارهای اقتصادی چون بخصوص اگه توجه کنید به بدهکار افول اقتصادی داره. آخو افول اقتصادی من شوهر نمیدم. شما برید سخنرانی مراسم تحلیف خود ترامپو گوش بدید. خودش داره میگه از, از اقل... چرا میگه اول آمریکا؟ چرا میگه من عظمت رو به آمریکا برمیگردونم؟ یعنی بر... یعنی این وجود نداره دیگه خودش داره میگه خب شما ببینید عفو اون رو ببینید این های جهیدی که بر مدل روش میکنه اما اینا منوت به یه چیز عادی بود ببینید ما توی جامعه جامعهام نیروهای مسلح ما که تو اوج اعتبارند الحمدلله رهبری خیلیا فهمیدن که ربع دو هست میگفت آید دکتر من اینو به چشم خودم میدیدم من دانشجویی داشتم که توی سال 1401 سال 98 با اینا کلی بس چیزم بود حرفو میزدند. اینا از ها, چیزای خاص میگفتن. سن ماجرایی بود. خیلی عین تبلیغات ایران اینترنشنال میکردن. همينا تو این روزا به من زنگ میزدن. خدا شاهد این دارم این حقیقت. زنگ میزدن میگفتن که آقا نگران حال آقا بودن. <تصفح> نگرانی این بودن که بعد اون کسی که درست فهمید اینو، بعد کسی که میگفت ای این غیر اعتماد این بود. بعد فهمید فرمانده کل قوا بود که این قوا ما رو حفظ کرد. آقا واقعا ما رو رب میرفتیم. ما لبه پرتگاه بودیم اصلا تعروف نداره. یعنی اگر این نیروهای مسلح رو ما نداشتیم، ما رفته بودیم، فیت شده بودیم، ما رفته بودیم تا تاریخ... به تاریخ بیبسته بودیم، واقعا رفته بودیم. این ها میدوید؟ هر خیلی, خوال... ت... خیلی تر خطر, خطر ببین جنگ سایبری، بعد عملیات ترور، بعد عملیات ریسپرنده های داخل، عملي... حمله از بیرون، هسته های مسلح تروریست تو کردستان و نوایی دوربن ما. آماده کرده بودن همه چیز بعد زدن سران، زدن جر... اصلا کاملا میخواستن یه ایران بی دفاع درست کنن که سرش رو ببرن. اومده بودن برای چه چیزی و ما موندید. یکی از یکی از هماسی ترین و بیادماندنی ترین دوره ها و مقامت های تاریخ ماست. کمتر <تصفيق> دوره داریم ما اینطوری. مگه واقعا یجدا نظر رو یک تو تاریخی اینو بیشتر روایت می‌کنه و ما بیشتر می‌فهمیم بله که چه کاری چرمی... کرد آره... بله چه کاری ملت ما کرد این دو تا کارمون هنوز واقع با... نیستن یعنی سه عنصر عالی عمل کردن یکی رهبریه آرامش رو حفظ کرد با درایت تمام تو لحظه که همه خودشون رو میتونستن ببازن بازن و باخته بودن ایشون ها رو گذاشتن و چه پیامی دادن با یه آرامش مطلق رژیم بیز اسرائیل خواهد شد خیلی عالی بود اون بابا اصلا یه بعد بعد دیدی که تو عینت پیدا کردن خیلی بود یعنی گام اول شو آدم اصلا فهمم که شواله بعد چه واقعه بعد اون اون اون صلابت رهبری اون هدایت اون بینش اون بصیرت حیرت انگیزه گام دوم نیروهای مسلمان یعنی چه کردند یعنی مثلا تو شردی که همه رو زده بودن الان فهمم که اصلا کسی نیرومندی نیست, نیست این نوسیم این نیست بعد دائما هم سر صدا میکردن نمیدونم اینا رو زدیم لانچرها رو زدیم اونها رو زدیم تو شاید نیر از سال 4 بعد از اون که شروع شد چه اعتباری، چه آموزهایی، چه چطوری رفتن، چه طریق ابور کردن، واقعا در من فکر. آخه دفاع چند لایه کنترل کرد، چه طریق ابور کردید؟ گاهی وقت من تفسیرای این کارشان سه که نظامی رو می‌خوندم تو آدی جنگ می‌شنیدم و می‌لدم. وقتی اینا میگن چه طریق مشکاینان نهایت زبدری میانش، پس فضایی خلایی نابور میکنند. پس از آن آقای توان تکنیکی به خدا نسل کاری ساده ای نیست. و بعد می‌دونید بخش زیادی از اینا سرمایه یه داخلی ماست همین بچه های صنعت شریف و این ورانور نه اینا نا همین جوون های که اینجا موندند و این صنعتمون شکل اینا نه از این ورانور نه این, نه. این کسی به ما چیزی نمیداد شما دارید میبینی دیگه در, تحریم و, تحریم, در تحریم و اینا سوم ملت. ملت ملت موجزه کرد بعد تمام تزات ها بعد تمام اینها فائق اومد و اون حس فهمید این لحظه لحظه ما واقعا یه لحظه تاریخی ر و هنوز تو استمرارشیم حالا چه باید بکنیم؟ من, من ببین من من هم با این نویسندگان این بانیه که پارادایم باید عوض شه منتها خلاف اینا من معتقدم پارادایم با باید انقلابی و عدالت محور بشه ما باید به این جوری اگر بشیم سرمایه اجتماعی الان که سرمایه خودارش خیلی ترمیم شده اما باید حفظش کنیم برای اینکه دوباره از دستش ندیم ببین اگه ما دوباره سیاست اقتصادی نولبرالی ادامه بدیم دوباره توزیع ثروت ناعادلانه باشه دوباره مردم ببینند که یکی نمیتونه بره مثلا بچه‌شو رو بفرسته مدرسه زیر بار اجار خونش مونده زیر بار شهریه دختر پسرش مونده اون یکی داره از شدت ثروت نمیده هیچ ده تا شرکت و فلان شهر و فلان چیز رو داره هیچی میفرسه بچه هاش توی اسپانیا و آمریکا و کانادا و خیابون میخره و نا این میخره و مال میخوره اینا آسیب میزنه اینا نتیجه مدل اقتصادیه. اون مدل اقتصادی بود وابسته یعنی شما مدل اقتصادی که به سرمایدار اجازه میده به نحوی هار بیفته به جون جامعه و هر بلایی میخواد سر مردم در بیاره و کسی نتونه جلوی اون اونباد کنترل بشه دولت باید ورود کنه حامی مردم باشه دولت در مقام حامی مردم باید یقه سرمایه‌دارو بگیره این مستزمی یه کار فیزیکی نیست یه طراحی تئوریک و برنامه‌ریزی و تغییر مدل میخواد این تغییر مدل باید بده <تصفيق> یعنی بنده موافقم پارادایم باید عوض شه. پارادایم اقتصادی نولیبرال باید گذاشته بشه کنار. پارادایم اقتصادی عدالت‌میوره مردمی باید بیاد جاشو. یعنی سمتگیری اصلی اقتصاد ما به جای اینکه این باشه که برای کلان سرمایه‌دارای یه درصدی و زیر یه درصدی هی hey, سود تولید کنیم، هی hey, فضای نساری ایجاد کنیم، باید بره به این سمت که برای سرمایه‌ی خرد، سرمایه‌ی کوچک بر اون یه بقاله، بر که یه ذره پول داره بر اون که فقط نیرو کار داره برای این نفض ایجاد کنه. ما باید امنیت امنیت شغلی امنیت بهداشتی امنیت آموزشی برای فرودستا مدل اقتصادی اون دوستش من نمیگم از سهمداری عبور کنیم سوسیالیست دولتی کردم نه اینا نمیگم. اما میتونیم این روندهای های هار وحشتناک استثماری زد مردمی سرماداریی رو کنترل کنیم و باید بکنیم. باید دنیا تجربه کرده ما میتونیم ما اقتصاددانای عدالت محور داریم همه اقتصاددنای دنیا که این حب... چند تایی که بخششون این برنامه کردن نیستن که ما یه عالم اقتصاددان عدالت محور مردمی داریم اینا وجدانهای اخلاقی دارن اینا آدمهایی هستن که پای این جامعه ایستادند اتفاقا آدمهای بی‌مددهای هم هستن اینا حاضرن هر خدمت و کمکی رو بکنن به شاید که ما اینا رو به بازی نگیرید اما همین فضای مدیرانه که همین بخششونی... دوستانیان که این آورو آن آنچنان انحساری فضا رو بسته بودن، نمیذاشتن هیچکی بیاد، هیچکی نفس بکشه، هیچکی را نمیدادن، همه رو رونده بودند به نام غیر کارشناسی و غیر علمی و اینا فقط حرف خودشون. سی و سال این علم شما رو دیدیم دیگه دوستان، این مدل اقتصاد سرمدری شما رو دیدیم حاصلش اینه، یک مقدار این فضا رو باز کنید، تو فضای دانشگاهی باز کنید بذاید تئوری اقتصاد عدالت طلب غیر سرمادری هم بیاد غیرلیبرلی هم بیاد تو مدیریت هم با این کارو بکنیم این یه نکته مهم تو هسته پارادا های مقصدی اینواده بشه دوم پردا فرنگیمونه اون نمی بحث مفصلی داره یعنی ما واقعا به جای اینکه قخشیم تو روزمرگی و تو آرمان زودایی و اینها باید من نمیگم ازصبحشب مردم اذا بگیرن یا سرود انقلابی همش پخش کنیم یا مخالفت با شادی مردم کنیم من بددا نرف رو نمیزد. یا اینکه گشت ارشاد تو خیابون بفرستیم ابدا من از مخالفان سرسختی گشت ارشاد شما اصلا نه حرفم نه حرفی من اتفاقا تو اصل فرهنگ معتقده به تعامل با جامعه من تعاملی که برایندش به نفع این کل این کشور باشه نه به نفع زبون شدن ما ضعیف شدن ما حقیر شدن ما از خود بیگانه شدن ما و تبدیل شدن ما به یک موجود توفعلی ترجمه ای که فقط نگاه کنیم بقیم من اتها این اینجا نخبگان اینجا دانشگاهی خیلی ما و من تو این روندی که ما توی سی سال گذشتیم نظام دانشگاهی منو مقصر میدونم که اینها راه رو بر تفکر بستند اینها راه رو بر تئوری پردازی بستند اینا راه رو بر اینکه ما بخویم تفکر انقلابی مستقل، انتقادی مستقل، حتی انتقادی غربی بابا اینا راه رو بستند. اینا اینا اینا مسئله است. نکته سوم میگم وقت اون تنگ انگار ببخشید ما وقت داریم، وقت داریم. نکته سوم دکتر توی سیاست خارجی. ببینید این مسئله مهمه. ببینید ما تو من هیچ کس من فکر میکنم، هیچ کس فی نفسه با مذاکره به مسابقه مذاکره به ماهوای مذاکره مخالف نیست. مذاکره تاکتیک شما یه بار استفاده میکنید خوبه یه جا نمیکنید بعد کسی نمیاد دشمنی بو صرفا مذاکره باشه. اما اینکه ما بیایم تو جامعه دائم القا کنیم که آقا اصن با ما کاری نداره نظام جهانی با ما کاری نداره. آمریکا با ما کاری نداره. اسرائیل با ما کاری مایم ما که با ما دنیا کار داریم. همین حرفایی که میزد دیگه یه رئیس جمهوری بود تو این ممتنی ممتنی که میگفت چون شما رو موشک ها نویسید مرگ بر اسرائیل بس بنابراین سرمایه خارجی نمیاد چون سرمایه خارجی نمیاد ما مشکل ریزگرد داریم مشکل بیکاری داریم مشکل فلان داریم آب داریم اینا همون موقع من از این, دو از این رئیس جمهور محترم اون زمان و از دوستانشون یه سوال میکردم میگفتم آقا شما که میگید و از اقتصادی بد ما ناشی از اینه که دنیا ما رو تحریم کرده چون ما از دیوار سفارت بالا رفتیم ما بر آمریکا گفتیم ما بر اسرائیل گفتیم خب به من بگید وضع اقتصادی افتضاح مصر بره چیه وضع اقتصادی افتضاح مکزیک بره چیه وضع پرو که به مراتب از ما بدتره بره چیه پرو و مکزیک و اینا میدید هایتی اینا لهن هستن چرا اینطوریه از دیوار کدوم سفارت بالا رفتن کدوم مرز آمریکا رو گفتن مکزیک مکسیكی‌ها در واقع حیات خلوت سرمای آمریکایی، مصر بیچاره که تسلیمه. اون که اصلا فرماندهی ارتشش هم دست آمریکاست. وقتی که می‌خواستن مبارک رو تو اون انقلاب تحریر سال 1990، آمریکا خواستن مبارک رو سننگون کنن، فرمانده‌های ارتش مصر رفته بودن به جن که پیش مبارک باشه، رفته بودن پیشو با ما که از اون خط بگیرن. خب بس سیاست اقتصادی سایدوتور ربطی به این چیزا نداره. <محن> سیاست اقتصادی نئولیبرالی تو مصر کاری کرده که اسکندریه آب شرب زحمت داره سیاست اقتصادی نولیبرالی مکزیک رو به ترین کشور آمریکای لاتین بعد از پیوو کرده همون سیاست پرو و خاکستر نشونده همون سیاست تو ایران همین بلال سر ما آورد اینو باید متوجه شیم اینا ربطی به سیاست خارجی نداره دوستان عزیز شما میتونید سیاست خارجی مقاوم و مدافع استقلال ایران داشته باشید سیاست اقتصادی دو نادلانانه باشه و اتفاقا بخشای زیادی از جامعه بتونه که با شما بعد بشن از شما طرفداری میتونید موزه اقتصادی رو دعوا کنید کی نمیذاره همین دوستان عزیز همینایی که به نام نظام دانشگاهی، نظام کارشناسی، بودجه نویسی ما دست ایناست، مدل طراحی های توسعه ما دست ایناست، سازمان برنامه‌بودجه ما دست ایناست، وزیر با اینهاست، معاون وزیر با اینهاست، مدیر کل با اینهاست، همین عزیزان، همین عزیزان که بخششون هم تو این ما من مسئله شخصی با کسی ندارم، همونطور که استادی فهمیدید، بحث هم جریانیه، هم دیسکورسی که دوست عزیز من احساس خطر میکنم اگه ما دوباره این روند ادامه بدیم ممکنه این انسجام اجتماعی از دست بره ما باید حواسمون باشه باید عوض کنیم اما تو سیاست خارجی اگر ما تو عرصه اقتصادی عدالت محور بریم جلو که انشالله از ازم به بعد بریم تو عرصه فرهنگی تغییر بدیم خب ما این پایگاه اجتماعی رو به دست آوردیم الان محبوب دنیاییم الان اعتبار ویزه و ویزا داریم یه پیروزی بزرگ بی‌نظیر تاریخی که هرچی در وسپش بگیم کمه به دست آوردیم خب حالا ما باید از موزه اقتداری بیشتر از اقتدار قبلی اون موقع ما را از بمباران میترسوندن ما اون بمباران عقب زدیم خیلی شاهکار شده یعنی ببینید اون موقع ترامپ میگفت یا مذاکره یا بمباران یا تسلیم تو مذاکره میشه تسلیم. تسلیم یا تسلیم یا بمباران خب ما تسلیم نشدیم و بمباران و عامل بمباران و همه رو را عقب راندیم طوری که اون مجبور شد خب از ما تقاضا کنه که آتش بس کنیم خب برای چی من امروز برام دوباره تسلیم بشم من مخالف مذاکره برای تاکتیک نیستم ها اگر از موزه عزت از موزه حکمت از موزه استقلال از موزه اقتدار نبا این پیش فرض که آقا همین پیشا پیش تو بود چیز هستی تو که باگذار کنیم رو موشکیت هم بیار من بهت بگم کار کنی با این قسمش مذاکره نیست که و این وی ما رو دعوت به این چیزا دارن میکنن شما به من بگید ترامپ چطوری دراجه مذاکره با ما عقد میزنه اینقدر پر شکست خورده نتونسته میخاست میخواد ببینید کف حرکت اینا تضعیف ما و ایجاد هرج و بود سقفش سنده گونیمون بود هیچ نشون نتونسم عملی کنه حتی نتونست آسیب جدی به ظرفیت اونانیوم ما بزنه خب بعد باز با پر داره با ما حرف میزنه خب با این آدم آیا ما باید از چه رو بگیریم موزه جز موزه اقتدار هیچ موزه ای اینا باید از ما اصخایی کنن باید به عنوان, م... ب... به عنوان متجاوز رسما شناخته بشن و بپذیرن باید قرامت بدن و باید هر پیش شرط زلت حالوت رو بگن آقا باشه ما غنیسازی غنی حق ماست دانش ماست رعاورد ماست و به عنوان سرمایه بزرگ ما باید بمونه اصلا بی برو برگرد سیستم موشکی بخشی از دفاع مشروع مردمی عادلانه ماست و باید بمونه و باید توانمند بشه خب مذاکره اگر این شرایط رو نمی‌پذیرید عالیه بریم مذاکره کنیم ولی دوستان عزیز دهن یه جوری باز می‌زنن اینا که این نامرنوشتن که انگار ما بودیم که جنگو شروع کردیم ما بودیم که تجاوز کردیم ما بودیم که زیر مذاکره زدیم انگار ماها بودیم که قرار کردیم به قول این آقایون نگاه افراطی حالا میگن کار نکنید دوستان پس اگر ما این کار کرده بودیم چه داری با ما حق میزنید؟ یعنی عزیزان اینهاد داری دای دکتر عزیزان؟ من سخنم در اوند اینها اینه یعنی احساس میکنم که ما در یک موقعیت خاص ویژه تاریخی قرار داریم خداوند یک فرصت بزرگ به ما داده و یک خون جدیدی، انرژی جدیدی در رگهای گفتار انقلاب اسلامی میتونه وارد بشه من معتقدم گفتار انقلاب اسلامی. حال ما ازواژه گفتمان استفاده میکن دللا رو بهتون میگم. گفتار انقلاب اسلامی باید ناظر به شرایط امروز بازروایی بشه. ام. من تجهنظر نمیگم باز روایی دارم میگم. یعنی ما باید یه جووری بازروایش کنیم ناظر به لای اجتماعی جدید پیوندهایی تازه بین این گفتار و بدنه اجتماعی ایجاد کنیم یعنی به نظر من بخشی از توقات وسط مدرن ایران لای تحتانی و میانیش بخش این ظرفیت رو جهول محور دفاع از استقلال ایران، حول محور دفاع از تمامیت ارضی ایران، حول محور دفاع از هویت ایرانی، حتی با تکیه بر میراث ما، ببین من معتقدم انقلاب اسلامی بخشی از میراث سهروردیه، بخشش شافظه بر اینو دلیل دارم، بخشش فردوسیه،, بخشش فردوسیه. بخش ما اینا همه میراث تمام سنت عدالت طلبی و مرذوبم بخشی از میراث انقلاب اسلامیه. ما با تمام اینها میتونیم با بخشای از جامعه ارتباط بگیریم، بخشایی که تابحال یا نبودن یا دیده نمیشودن اینها پایگاه ما رو تقویت میکنه من معتقدم این کارا رو باید بکنیم و این باید باز وایی بشه این گفتم اما راجع واژه بگم میدونید که دو یه با... فرصت یه واژه دیسکورس است که فوکو مطرح کرد یه معنی خاصی داشت ام. این واژه حالا معنش تو زبان ما اصلا عوض شد و اینا رو بگذاریم بعد آروش داروش آشوری کی روشامپر که لیبراله که حالا های خیلی حالا خیلی پر رنگ فلان داره یه دوره شرایط فردیت بود اما بعد به صفت افرادی اومد ضد این جریان شد این آدم اومد یه واژه رو ساخت و نامو گفتمان. حتی ببینید حتی صادق چوبک که نه تعلق مذهبی داره چهره برجسته دوران جلیال روشن فکریه او هم به این واژه حمله کرد خیلی با زبان بی ادبانه کرد که من نمیگم چی گفت. به این معتقد بدین واژه اصلا با ساختار صرف و نحوی زوال فارسی نمیخوره. این واژه حالا جا افتاد من به این سببه که سعی میکنم خیلی از این واژه استفاده نکنم. مادهش گفتار، مقال، شما اینا رو داریم سخن. تو زبان فارسی موارد زیباتو حافظ داریم از صدای سخن هشنیدم خوشدار که در این گنبد دربار خب سخن انقلاب اسلامی باید های جدید با جامعه برقرار کنه چون نشون داد این تجربه تاریخی نشون داد اون چیزی که ما رو نگه میداره ایرانی رو نگه میداره استقلال نگه میداره عزت نگه میداره مرزبوم نگه میداره آرمانگرای انقلاب اسلامی اون تفکر بود که تو شرایط و بیچارگی تو شرایط سختی مقابله درزل که دنیا مقابل ما بود ما رو حفظ کرد حالا می فهمیم ارزش این گفتار رو گفتار انقلاب اسلامی رو من فکر می کنم فضای جامعه حداقل بخشای از جامعه بیش از گذشته آماده است برای اینکه این گفتار رو بشنوه منتها فقط اون آمادگی کافی نیست من در مقام حکمران هم با تغییر بدم. من که حکران نیستم من که تو عمرم مدیر یه چه میدونم یه چیز نبودم آبدار دستم نبوده ولی در مقام من نوعی رو دارم میگم یعنی اینجا اگه با تغییر رو بخواد اینجا است یعنی پارادایم اوکرانی ما تو اقتصاد باید بر در عدالت مهوری و مردم میگرایی و توی سیاست های اداری باید دوری کنیم از بروکراتیزم، از تکنوکراتیزم، از, از هر نوع فضا هایی که فاصله میاندازه با جامعه تبعیض فشار فقر اشرافیگری از این مدیریت های درای بسته که غرق ناز و نعمت بی اعتنا به خواست های مردم اینا باید تموم بشه و تو اساس سیاست خارجی مستقل مقتدر پیاماور توانمندی ایران هیچ کس حق نداره قبل از مذاکره بر ما شرط بذاره ام. به خصوص امروزی که ما از یک دوازده روز هواسه بزرگ سربلند بیرون اومدیم امروز دیگه حق ندارند اونجوری اگر قبول دارند باشه مذاکره. من تو امکنم این تغییرات رخ بده تا این سرمایه اجتماعی عظیم معجزه آسایی که تو جامعه وجود بشه. این انسجام ملی افسو شد حداقل بخش مهمیش نگیاده داشته بشه بخشش اینه که نظام دانشگاهی و کارشناسی ما این تکنوکراتای ما این بوروکراتای ما دست مردان از این استبداد وحشتناک از سیطری ترجمه به جای تفکر از بستن دهان آدمهای منتقد تو نظام دانشگاهی چون تفکر انقلابی داری چون عقل مستقل میزنی می‌بندن دهنتو اینا باید گذاشته بشه کنار این نیازمند تغییر تو ساختار امجالی ما. تغییر تو ساختار بذاد ارشاد و باد رخ بده تغییر تو ساختارهای سیاست اقتصادی اون باد رخ بده اینا باید رخ بده به نفع اون تا پارتی انقلاب. نه به نفع اون چیزی که این نام دگه به نفع تقویت جریان لیبرال و واداده و سازشکار من داخل تعبیر دیگه نمی‌خوام بگم بله دست شما درد نکنه حالا ان فرصت بشه در جلساتی حالا من چون چارشو به بحثتون روشن بود شاید حالا بشه مثلا یکی دو تاشو یه یعنی مقدار مفصل‌تر من در خدمت ان صحبت حتی بکنی. شما دوستانی از این دوستان که میخوان به شيزانه میشه بیان بحث کنیم صورت آره، یعنی شما, شما بر... روی نئولیبرالیسم بله حالا دوستان یه تدبیری تو شبکه بکنم من خیلی دوست داشتم که اون فرم مخصوصا تو،, تو این حوزه بحثی منظورم ب... فرم برنامه شیور رو بیشتر پیش ببریم که طرفمند آتد... باشن و با باید... دکتر عزیز من میخواهم چیزی بگم متاسفانه برخلاف این حرفی که اینا میزنن هی مزخرفای میکنن تکسدای تکسدای به نفع اینا شما خودتون نظام دانشگاهی هستید ما فکر کنم اینا من نمیدونم تو نظام دانشگاهی باشی می‌بینید حالا نمی‌شه نمیشه. مستر انتقاد دوستن صدا و سیما بود که اونم بالاخره بلخ... جای داره بالاخره بلخ... چون دانشگاه درس خودشونه بعد صدا, یه صدا و سیما تا یه حدی حد تا یه حدی حد اونم هایی داره به جریان انقلابی اجازه تلیمو میده این هم در نظام تعامل نمی‌کنن رویه‌ای از اینا ما خیلی استبدادیه این جریان روشنفکری رو نشون خیلی مستبده هی میدن در آزادی من انقدر خاطره دارم انقدر تجربه دارم میتونم به شما بگم حالا وقت نیست بله بله. متاسفانه این انشالله یه جلسه صحبت کنیم تا حالا به نظرم بد نیستش که حالا چون کلیت بحث معلوم شد انشالله یه فرصتی در خدمتون باشین که حداقل یکی دو تاشو با در خدمتتون بله. بله. بله بله بسیار عالیه بحث بسیار, عالی. بسیار عالی. مهمه بله چون خیلی بله. مهمه روکرد اصلی آینده ای ما. بله دقیقاً ما باید بریم به سمت پروتکل بله گرخو. بله. من چه کی را چون از تو یه آموزگار دریدم، آموزگاری که تو یاد بدی، سلامتی شی. آسمان عمو نه. آسمان عزیز. سلامتی شی. آسمان عزیز. منام تشرک کورم کنم از بین اندیزانه. عزیز. انشالله که موفق و مایت باشی از همه دوستان پشت صحنه تحسیب بردند چند خیلی خیلیم زحمت کشیدن و خدمت شما بال دوستان گفتند یه آیتمی ببینیم و بعد ببینیم خدا چی میخواد. بله دوستان آیتمو پخش بکنن آیا دوستان شما خدا فزی